اجمالا اینه بدانید هر کسی که مجتهد بیشه باید کنی شخصی صاحب علم باشه بدون صاحب علم و مقام و حیثیت رو پیدا نمیکنه علم واحد علم است که برای هر مجتهدی علم حدیث اولین ضرورات علم قرآن و علم حدیث باعلوم بعدی با اینها جز وظایف و فرائز ضروری ان با باشه اگر این حار نداشت این مجده ارگز قرار نمیگیرد. پس این اولین چیزی است که باید همه اینو داشته باشن الان آیا امام بونیفر همه طلاله چیز داشته یا نداشته تو بعضی نقد میکنن و دارن مستقیم حضرت امام را با ایندقه های بدبینی برای مردم معرفی میکنن. یک چهره ناتوان و یک شخصیت ضعیفی را دارن بر اترین امامی نمایش می با هدف چی هست هر گا کسی بخواد یک مکتب و یک فکر را تضعیف میکند، باید شخصیت آن را تضعیف بکند در هر نظامی و در هر انقلابی و در هر نهزتی که وجود داره در تمام انقلابات و نهزتها و مقاطب فکر اولی کاری که میشه شخصیت علمی و شخصیت حیاتی و روح آن را مورد هدف قرار میدهند. و او اون مورد هدف قرار گرفت، بلی چیزی نیستند. حالا در دنیا مذهبی که نزدیک به یک میلیار در دنیا متبع دارند که هزاران و میلیونها از علما و مفتیان متبع چنین مذهبیان اون را مستقیم حمل کردند بزرگترین گناه است. بزرگترین گناه چرا؟ دارن بین دین الهی سنگ اندازی می تا مردم را بوسیله این حربها از اصل معدن دور میکنن حالا اینو بگیم تا اهداف چیست؟ اهداف کل اهداف اهداف زهرالودی هستن سمی هستن تا بوسیله تیرهای زهرالود پرتاب می به طرف منبع و اول شخصیت این مکتب و نهزتی درست شده است آیا که چیز واقعیه دو؟ در دنیا بیانیم در, در روز قیام واد، انسان‌هایی که داخل بهشت می‌نن، از کل امتها اینها دو سیب اونها منها مسلمانها هستند. یعنی وقتی بهشتیان در روز قیام دو دو سیب منها بیایستن مسلمانها هستند. یک سیب منها از سایر ادیان. دینهای بعدی بودن مثلا مسیحیت، یهودیه، ادیان الهی. اونها یک سیب و دوست سوم بهشتیان مسلمان ها این امتا روز این چیز بسیار زیبایی هست با وقتی دوست شیبون مسلمان ها دوست اون بهشتیان مسلمان هستند اگر نگاهی کنی انهای که دارند بر مکاتب فکری فوقهای اربعه حمله میکنن کنند اگر انها دوست اون قرار میگیرن گیدن انها داره خل از خود درخت زندگی اینها از ظهور اینها سال رد نشده سد تا سد پنجا ساله آ اینها وقت اون حدیثی که داخل ترمیزی آمده که دو بهشتیا بهشتیان هستن هاستن همین گروه میشه که چهار امامو رد میکنه هرگز انجور نمیشه چون هردت کل دنیا نگاه بکنه از اول تا این روز خیلی اندکان خیلی کمن چه جو میتونن دو سبو بهشتی هم باشن پس این نیست. بعد این است که نقطه بعدی این از در بین این مذاهب مذهب احناف دو سبو مسلمان های جهان و تشکیل میده از مذاهب بعدی شافعی مالکی همبلی تشیع و فکرای بعدی رو کل با حمیل جا کنند، کسانی مکتب اسلام خود را وابسته کردن دو سوم کل اسلام را احناف تشکیل میدن با جو را دارن مستقی را رد و کافر میکنن یا اینها را بدون حدیث و بدون کتاب معرفی میکنن. پس آیا او این ظلم بزرگ داره در حق چنین امامی کرده می شود حالا آیا این امام که ما میگی امام آزم یا امام ابو هنیفه ایت چنین امامی داره کتاب بوده داره کتاب نبوده است چنین امامی قطعا داره کتاب بوده و کتابهایی که به زورت و ظلمی که می مخفی نگاه داشتن و علم چنین شخصیتی هست می علمش را مخفی نگه بدارن و به جهانیان این چیز را معرفی و اعلان بکنن تا اونها باورشون بشه که امام ابو حنیفه رحمه الله در فن حدیث ضعیف بوده و حدیث ندواشته حالا در باب عقیده کتاب عقیده امام آزم فقه اکبر تمام داره اعتراف میکنن در میگن در عقیده کتاب فقه اکبری داشته اما در فن حدیث داشتن بله در فن حدیث حضرت امام آزم رحمه الله مانند بقیه ایمه کتاب همه امامها کتاب داشتن کتاب مشهور امام آزم کتاب الاثار هست کتاب الاثار حالا در دو جیل چاپ شده این کتاب و این کتاب از همون اول موجود بوده و حالا هم موجوده بر این کتاب علماء کار کرده کتاب الاثار امام آزم امام ابو حنیف رحمت الله علیه را امام محمد روایت کرده امام محمد میگه اخبرنا ابو حنیفه اخبرنا ابو حنیفه از اول تا آخر کتاب فقط با همین سند اخبرنا ابو حنیفه با سند بعدی تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم این کار رو داده و این تصنیف گران سنگ امام محمد که برای از استادش روایت کرده کتاب اصاریس امام محمد روایت کرده امام ابو یوسف روایت کرده امام زفر روایت کرده بقیه علماء همین کتاب را از اساتید محترم روایت کرده اند بعضی ها امام محمد میگه کی میگه محمد اخبرنا ابو حنیفه اخبرنا ابو انت کل کتابش این سند آورده و کتاب خود کتاب مال امام ابو حنیفه با روایت امام محمد این ایراد وارد نمیشه چرا تو معطا امام محمد روایت میکنه پس یا مالک کتاب داشته معطا امام مالک را امام محمد دکتار معطا امام محمد روایت کرده کتاب صحیح بخاری که این داریم این باستاند روایت شده سناده های زیادیان ایکی از سناده های مشهوره که فرابری روایت میکنه از امام بخاری رحمه الله امام بخاری دار بوده ای شیوخ امام بخاری مورد نقدن، اُستاذ امام بخاری کتاب اونها کجا هستن کتابا شو بیارید در حالی داره امام بخاری از اونها حدیث روایت میکنه جمع کردن احادیث محدثین بوسیره شاگردان اما کتاب خود امام اعظم توسط خودشان جمع شده و امام محمد امام یوسف امام منظوفا و دیگر طب را روایت کردن وجود داره حالا حیثیت این کتاب کتاب, کتاب الاعصار امام اعظم حیثیتش اینقدر بالا بود امام مالک باون جلالت الشانی که داشت همیشه برای استدلال به کتاب آثار مراجعه میکرد امام ذهبی که شافی المذهبات نیست شاخی المذهبست است، نویستا در تذکر خودش میگویند که امام مالک بکسرت بکتاب آثار راجع می کن و ازون مطالب در دریافت می کن یعنی گویا که کتاب آثار امام آزم برای امام مالک یه حیثیت مصدری داشته است و مقام کتاب آثار در مقابل معطا معنی صحیح بخاری و اختاب هستونان قرار می گیرند این قادر با علاوه. این خود کاری بود که این کار رو اون زمان کرده بودن بعد است که این کتاب اون زمان جمعولی شد صورت بیرسولت نبود امام سیوتی در تبعید و صحیفه فی مناقب امام ابی حنیفه که شافی المذهب هست می نویستن که اولین کتابی که در فن حدیث به وسیل عبواب فقهی تدوین شده کتاب الاسطار امام آغزم هستین اولین کتابی که بر عبواب فقهی تدوین یارد همین کتاب بوده و بقیه ایمه همه اونها از امام آغزم در این کتاب تقلید کرده هر کسی کتابی نوشت تدوین کتاب که تدوین کتابش را از انجا اخذ بیکرد امام شافی کتاب داره احمد بن هنبل داره امام مالک داره بخاری تلمیزی دارن مسلم و ابن ماجد دارن همه کتاب دارن تو بعدها اومدن فرق مراتب و طبقات امام آزم و امام بخاری چندین طبق با هم تفاوت دارن امام ابو هنیف مقدم هست امام بخاری مؤخر است. تقریبا پنجاب پنج سال بعد از وفات امام آزم امام بخاری متولد شده 55 صاحب وفات ساز متواله شده حالا این کتاب اولین بار تدوین شد و بقیه علما کتاب خود را بر همین منوال تصنیف می‌کردند این یک ای امتیاز بسیار فوق العاده است که اینجا حضرت امام اعظم داره حالا موقع این کتاب بین محدثین چگونه بود موقع این کتاب در بین محدثین به حدی بالا بود که علمای حدیث و محدثین عموما بر کتاب الاثار امام اعظم کارهای بسیار بزرگی کردیان مانند حافظ ابن حجر رحمه الله که زمان وقتی که کتب <تصفيق> ایمه اربع امام مالک شاشوی و احمد الهنبغ رجال رو بررسید میکنن در زمن اون تمام رجال کتاب خود آثار رو بینویستن یعنی چهار امام با کل چهار کتابهای های ایمه رو رجال آن را رو بررسی میکنن و بر اونها کار میکنن در چندین کتاب این کار رو میکنن یک جای دیگه امام امام حافظ ابن حجر رحمه الله جایی که رجال کتب سحاسته تر آورده در کنار رجال کتب ایم اربر آورده یعنی ده تا کتاب و رجال رو جا این قدر از موقعیت بالای برخوردار بود این کتاب بعد از اون این یک کتاب بود اما مصانید امام اعظام مصندهایی که شاگردان حضرت امام روایات استاد را جماوری کردند. شاگردان حضرت امام روایات استاد را جمع‌آوری کرده مانند امام بخاری که احادیث استادش را جمع‌آوری می‌کنه در کتاب خودش مانند امام مسلم که احادیث استاد اساتید خود را در کتاب جمع‌آوری می‌کنه مانند بقیه محدثین امام اعظم رحمه الله کتابش را کتاب بقیه مصانید امام اعظم را بقیه شاگردان در چندین 17 نسخه 17 نسخه در مورد که موس... م... مسند امام اعظم جواهر بعد دیگه 20 نسخه کتاب دارند اونها یک بار اینها کار کرده کیا بودن؟ منو تو نرو فکر میکنی محدثین کتاب بزر ما مانند ابن اسفکی مانند ابو نعیم اصفهانی مانند ابن عدی اینها مسند امام اعظم را جمع آوری کردند و کتاب ایشان را تدوین کردند علاوه از اس کتاب آثار کتاب ها امام ایمام آزم را در 17 نسخه و بعضی بیگوین در 20 نسخه شاگردان متفاوت آورده از بین آنها از بین آنها ابن عدیب که امام جهر و تعدیل هست اول مخالف امام آزم بود اول مخالف بود چون درک نمیکر وقتی که ایمام را شناخت و علم ایشان را دریافت امون شخصی که مخالفش بود کتابی در فضائلش کجا مصند را جمعوری کر که شاید تلافی اون گناه قبلی من باشه که من اونجا باز گفتی بودم که مصند را جمعوری کر و نویشت مانندی امام تحاوی رحمه الله که خودش قابلا شافعی المذهب بود امام تحاوی رحمه الله که شافعی المذهب بود مذهب شافعی را رها کرد و کتاب شرح معانی الاثار در دو جلد عظیم تنپای با ابو داوود و نسائی هست او را و خدمت بسیار بزرگو و شایانی را در مرزم احراف انجام داد. در کتاب آثار حالا ابن عذید آمد برای جبران مافات و تلافی کردن اون این کار انجام داد و در شان حضرت امام کتاب را تصنیف کرد تبغی بدوند پس محدثین بسیار و زور مانند ابو نعیم اصفهانی، مانند ابن اساکر مانند ابن عدی همه کار کردن و حدیث حضرت امام را در مقنده مختلفی جماوری کردن حالا کتاب من دارم چابه های اینجا آمینیست خونه دارن کتاب را چاپ است و ادیانها برای این کتاب کارها از زیادی نکرده. حضرت امام عظم رحمه الله حالا کتابش را از چند هزار حدیث انتخاب دا. کتاب الاعصاری کتاب الاعصار حضرت امام رحمه الله از بین چهل هزار حدیث انتخاب شده است. منند کتاب سهیب بخاری که از بین ششصد هزار حدیث انتخاب شده صحیح بخاری داخل چهار هزار حدیث از بین 600 هزار حدیث انتخاب کرد و امام آزم از چهل هزار حدیث حالا حدیث کم نه وقت فاصله زمانی بین امام آزم و بین امام بخاری رحمه الله تروغ را زیاد بطور بسات چرا اونجا 600 هزار داریم یا هزار داریم؟ این چهل از اون 600 هزار قویتره. چرا؟ چون که هرچی به منبع نزیدتر باشید خالصتر و بهتر و صندت کتاحتر میشه هرچی از منبع پاتل بگیری طرق بیشتر صندت تورانیتر میشه و حدیث بیشتر میشه به طور مثال حدیث دارین انما انما این حدیث داخل اولین حدیث صحیح بخاری هست حال این یک حدیث است. اما این حدیث اینما الامال و بنیاد دویس طریق و دویس صندت داره اول حالا یه چند حدیث میشه دویست حدیث حساب میشه به این از جوری استان میکنن حدیث در متن یکی هست اما چون که دویست سناده و اوا دویست تروق روایت شده در فن حدیث بیم میگردد دویست حدیث پس طور که امام عظم به من گفته تابعی بود و صحابه رو مناقصت کرده بود و به من بنزیک بود طرق کمتر بودن بعدها طرق بیشتر در روايات بیشتر میشه به این صورت بود یکی از شاگردان حضرت امام میگه من رفتم خونه حضرت امام ها رو به من نشون داد از تاب حدیث بود گفت اینو حدیث است من جمعوری کردم یکی از شاگردانش میگه یار در کتاب‌های حضرت امام هزار حدیث موجود است که روایت به هر حال این ظلمی هست که کسی بخاطر برای شخصیت شخصیتی بزرگ ایرانی که توان اینها هم کتابهای حضرت امام عالیان، امام حنیفه هستند که محدثین بستار بزرگ بر اینها توجه ویژه ای داشته و اینها را جمع‌آوری کردند. از هیچ امامی پایتر نبود، بلکه کار و کسی کرد که پایه گذاشت. نه که تمام کرد، این پایه را گذاشت، پایه ایشان گذاشتند در تدبیری علمی حدیث و بعدی از اون راه و همون راه رو, همو را رو ادامه دادند. علاوہ هم دیگه کتاب‌های روزی که بعضی میگن حدیث بیشتر بلد این بزرگ کس حدیث بلد اگر هم بالفرض ما قبول بکنی ما این کمال علم است که از بین 17 حدیث 80 تا مثلا استنباط کرد خود حضرت امام استنبات کرده دراوی قبادی ها این کارها رو کرده پس اینها به این صورت رو تیز کردن و نقل و ایراد کردن و دست هر بچه و بازاری دادن که او این که حدیث نداشته اینا دروغ میگن این ظلمی سربزرگی است که نابخشودنی هست چون دارن نسبت به 1 میلیارد انسان ظلم میکنه و در این مذهب بزرگ جهان رو زیر سوال میبرن این گناه بسیار خطرناکی است مواظب باشین این چیزا به زبان نیاری چون کاروان نیست کار اولواؤ مجھتے بری از محدثین بھی ایشان کی بودن کسی نیخا ابو حنیفر و بری از امام تحاوی بھی پرسی ابو کی بود کتاب شما تعالمی که اصلا داری داریم که کثرت امام تهاوی رحمه الله برای استنبات یک مسئله تمام صورت‌ها بررسی می‌کنه و اخیری می‌نیسه که هاذا قول ابی حنیف و توابی یوسف و محمد این چیزی اومده کل طرق روات کرده این قول مستند ترین قول در نزد من بود چیزی که امام تهاوی رحمه الله در کتابش این چیزو مرتب کتاب است مشهور بر نگاه می‌کنه بازار هم این گیر میاد و بدی از سی او تی ابو بود بی از علماء شافعی بپرسید ابو حنیفه کی از امام خود شافعی بپرسید ابو حنیفه کی بود میکرد از امام احمد ابن حنبل اسم حضرت امام میشنید گریہ میکرد که ما اعظم بوده اما مالک بھی ابو حنیفہ بی اگر این ستون تلاحت با دلیل ثابت میکن اطلاح است بیگه ابو نیفی شخصیت شخصیتی نبوده ابو نیفی رحمه الله شمشیر کشیدی بر 24 چهار فرق باطل بود حالا ما داریم راحت میگیم فرق باطل حجوم آوردن مقاطب اغیلتی و کلامی هجوم آوردن و شبهات ایجاد کردن تنها کسی که توانید خیلی با در مقابل خوی دهریها و کمنیستا اون زمان بیسته امام ابو حنیفه تفسیر کبیر امام رازی که شافیه متعصیبی هست اونجا نگاهی کنید اگر میگوید که امام آزم امام ابو حنیفه معنی شمشیر بررندی برگردن دهریها و ملحدان اون زمان بوده بی ایک شوی نواز در حضرت امام بود دهری ها حجوم آوردند که امام را به شهاده برسنن شمشی کشیدن چرا می کشیدن رو؟ میگن چون تو میگی خدا هست تو برای خدا داری تلاش میکنی. دار می حالا خیلی دارن در خود قضاهای مجازی میگن جهان بدون خدا زیبا هست همین حالا دارن تبلیغات میکنن جهان بدون خدا زیبا هست ما بگیم جهان با خدا زیبا جهان بدون خدا جهان اون جهنم است، اون جهان نیست همین کار رو کردن دهری ها آمدن که امام آزم را به شهاد برسانن شمشیر بالا بر گفتن چرا گفتن که چون که تو میگی خدایی هست حضرت امام آزم رحمه الله خورا فرگودن که مگر من اشتوار کرده داستان کشتی گوه این لحظیم گوش کن من چی میگم گوه چیه گوه یک کشتی. داستان مناظره پیشوما گو تاخیر کردی و بله من لب ساحلی سادی بودم این کشتی درختها خود به خود بخود کند شدن. شدن. قو قو قو خود به خود شدن تراشیده شدن کشتی درست رو در این حرکت کرد گفت دروغ میگی، گفت دروغ میگن گفت بله به چه جوری میشه خود به خود که کشتی درست بشه خود خود حرکت میکنه، گفت یک کشتی وقتی نمیتونه خود به خود درست بشه و یک کشتی بدون ناخدا حرکت نمیکنه پس این جهان و این کائنات بدون ناخدا هستن بدون خالق هستند میگه همه دهریها به پای رو گریه کردن شمشیر والستر بود تاستر و قتل کردن گری کرده ایمان آوردن چون ایمانی رو توهین کردن و چون ایمانی رو بد گفتن این ذور زر بسیار بزرگی هست جهانی رو سیراب کرد تمام مکاتب فقهی جهان از امام شافعی گرفته تا مالک و حمد از خود حوزه‌ی ماعولیف استفاده کرده چون همه به واسه شاگردانشان امام شافعی شاگرد امام محمد هست و امام محمد شاگرد امام اعظم هست امام محمد شاگرد امام شافعی شاگر هست امام شافعی شاگرد امام محمد هست امام محمد شاگرد شاگر ابو یوسف است با شاگرد ابا حنیفه همه از دغون حوازی استفاده کردن چجوری میشه برای این به زور ظلم و روا داشت این کارو نکنید که گناه بیستاب بزرگی آینده برای خود با خطر داره چون داخل صحیح بخاری داری که من عادا لی فقط لین فقط آزنتو بالحرب هر کسی با اولیاء من در ستی و دشمنی باشه من خدا اعلام جن دارم این داخل صحیح بخاری میو اغی بخاری قبول داری این برای نقاط تن چن شخصیاتی اولیاء الله بودین که بر دین خدا تلاش و خدماتی بزرگی رو انجام داده